برلین، آلمان 14 ژانویه 1993 روزنامه های آلمان طی یک هفته به طور مستمر و خستگی ناپذیر موضوع حراج ویولون استرادیواری و رقابت داغ آن را پیگیری می کردن. موضوع دراماتیک آن یعنی رسیدن مزایده به قیمت نجومی و باور نکردنی و توقف ناگهانی مزایده شایستگی این را داشت که در صدر اخبار و برنامه های تلویزیونی قرار گیرد، و تیتر یک روزنامه ها بشود این موضوع تنها مورد توجه رسانه های داخل آلمان قرار نگرفته بود بلکه به دیگر نقاط دنیا هم کشیده شد رقابت بر سر یک اثر منحصر فرد از میراث هنری بشر بود که اکنون حق مالکیت آن نیز در حالی از ابهام قرار داشت زنی حددودا هفتاد ساله با قدم های شمرده به طرف دفتر دادستان کل برلین گام داشت. با این سن هنوز چهره جذاب و زیبا داشت و موهای مشکیش بر زیباییش می به نظر می رسید موهایش در تلاش بودند طی سالها با حفظ رنگ خود با حمله سالخوردگی مبارزه کنند. در طول چند هفته گذشته ناخواسته خود را درگیر موضوعی دید که به بحث روز آلمان و بلک جهان تبدیل شده بود. حس می کرد تاریخ در ای بر جای خود ایستاده و خاطرات پردرد گذشته تصمیم دارند را کنند. وقتی روزنامه ها شروع به پیگیری موضوع ویولون استرادیواری کردند، هیجان داستان او را به سوی خود کشاند. اما نمی دانست خودش هم به زودی از ماجرای آن خواهد شد آن حوادث و نام مالکان ویولون او را به دوران جوانیش برده بود به خیابانی که در آن بزرگ شده بود وقتی نام لیلیان و هیلدا اشمیت را شنید و اینکه دختران آنها ویولون را به هر آج گذاشتند خاطرات پدر و مادرش. و مغازه عتیق فروشی مایر دوباره برایش زنده شد. در مقابل منشی دادستان ایستاد و گفت: من وقت قبلی داشتم برای قضیه ی ویولون اومدم. راشل مایر هستم. منشی از او خواست منتظر بماند تا ورود ویرا به رئیسش اطلاع دهد. ده روی صندلی چرمی مقابل میز نشست. خاطرات گذشته دوباره به ذهنش حجوم آورد. لبخندی زد. و در تصویر خیابان قدیمی و خانه خودشان غرق شد به روزهای گذشته رفت به آن وقت که یک دختر بچه کوچک بود و به آن روزها که دختر جوان و زیبایی شده بود و دل جوانان محله را میرو بود روزهایی را به یاد آورد که در کار کارهای مغازه در کارهای مغازه به پدرش کمک میکرد و تجربه های پدر را میآوخت او هیچ وقت از تماشای عتیقه های جدیدی که به دست می‌آورد خسته نمی‌شد. همیشه به معامله هایش افتخار می‌کرد. ذهنش او را به روزهای ظهور هیتلر و افرادش برد. با یادآوری روزهایی که هیتلر حکومت آلمان را به دست گرفته بود، لبخندش محو شد. پیشوا دشمنیش با یهود را پنهان نمی‌کرد. قوانین ضد یهود یکی پس از دیگری به اجرا در می‌آمد تا جایی که آنها به حکم قانون ترت شدند. باید خودشان را معرفی میکردند. حکومت بر آنها سخت می گرفت و فضا برایشان بسیار تنگ شده بود. در وطن خودشان و در کشوری که وطنی جز آن نمی شناختند شهروند درجه پایین شده بودند. هر روز اخبار دستگیری یا فرار دوستان و بستگانشان را می شنیدند. در حرف پدر و مادرش ترس از آینده مجب میزد. پدرش ابتدا فکر می کرد بهتر است صبر کنند. می گفت هیچ جرمی مرتکب نشده و هیچ خطایی از او سر نزده است و در آینده نیز به قوانین پایبند خواهد بود و به همین دلیل از دست رایش در امان خواهد ماند. اما او روز تر شد. به روز می می‌شد. به ویژه با شعله شدن آتش جنگ، هیتلر یهودیان را دشمن داخلی خود نامید. او آنها را به دستیس چینی علیه حکومت آلمان متهم کرد. به همین خاطر بود که پدرش ناچار به فکر فرار از آن وضعیت جهنمی افتاد. به نظر میرسید راه گریزی از آن نیست مثل موشهایی شده بودند که بین دیوارهای یک تلگیر افتاده بودند و دنبال راهی برای فرار می گشتند اما راههای خروج هر روز یکی یکی بسته می شد. تا اینکه آن روز معیر به خانه آمد، خوشحال بود به آنها مژده داد که همسایهشان اشمیت موفق شده است مجوز خروجشان را تهیه کند هرچه لازم داشتند برداشتند. و در تاریک روشن هوای سپیددم از جاده برلین به مونیخ به راه افتادند. به کمک آن مجوز می توانستند به شهر مونیخ مرکز ایالت باواریا بروند. برنامهشان شان این بود که به کمک شبکه فرار یهود از آنجا به سوئیس بگوریزند. پدرش گفته بود آنها منتظر رسیدنشان هستند. وقتی به مونیخ رسیدند در زیزمین خانه یک آلمانی دلسوز و مهربان مخفی شدند، هنوز بودند افرادی که شجاعت ایستادن در مقابل ستم حاکمان را داشتند، حاکمانی که در هر کجا که بودند از ظلم و ستم و تعقیب مردم بیگناه دست بر نمی داشتند. خاطری آن زیر تاریک و روزهایی که به نظر می رسید هیچ وقت تمام نمی شوند تا امروز راشل را رها نکرده بود. علاوه بر آنها بیشتر از ده خانواده دیگر هم در آن زیرزمین بودند و با امید به آزادی و رسیدن به امنیت در سوئیس، در آن مکان روزها را سپری کردند. با وجود گذشته چند دهه از حضورش در آنجا هنوز هم بوی رطوبت آن فضای تاریک به مشامش میرسید و آزارش میداد وحشت آن روزها به ویژه با یادآوری روز دستگیریشان به سراغش می آمد یک روز صبح چراغ زیرزمین روشن شد و آن وقت بود که فهمیدند گشت گشتاپو مخف... مخفیگاهشان را پیدا کرده و به آنجا حمله کرده است همه را دستگیر کردند و به طرف خدراهای حمله بار بردند که بیرون منتظر آنها بود. ماجرای آن روز بدترین کابوس زندگیش نبود چون تبعید به اردوگاه آشویتس و جدایی ابدی از پدرش و اندکی پس از آن جدایی از مادرش بعد از آن اتفاق, بعد از آن اتفاق افتاده بود. کابوس تعبیر مناسبی برای توصیف زندگی آن روزهایش نیست بعد از آن هر روز صبح با این فکر از خواب بیدار می‌شد که امروز آخرین روز عمرش است بسیاری از دوستانش در آن زندان‌ها کشته شدند و سرنوشت اینطور طور مقدر کرد که او نجات یابد بعد از آزادی به خودش قول داد هرگز رنجهای قوم یهود را از،, از یاد نبرد و تا زنده است آن فجایع را برای دیگران بازگو کند تحصیلاتش را تا مقطع را ادامه داد و استاد درس تاریخ یهود در دانشگاه برلین شد ظلم هایی را که هیتلر بر یهود روا داشته بود برای دانشجویانش تدریس میکرد. یک کتاب درباره داستان اردوگاه های مرگ نوشت که بسیار پرفروش شد سالها گذشته بود و همچنان تنها زندگی میکرد. همیشه نوک تیز پیکان انتقادهایش را به سوی آن ظالمان نشانه گرفته و تمام زندگیش را وقف این کار کرده بود چند هفته پیش با شیمون وایسمن مفصل صحبت کرده بود دیدارشان درست در همان کافهی انجام شد که سالها قبل در آنجا با هم ملاقات کرده بودند. یادت هست حدود سی سال قبل با هات صحبت کرده بودم؟ بله اون موقع راجع به لیلیان اشمیت حرف زدیم. گفته بودی باید فکر کنی و جوابم رو بدی اما تا امروز که هیچ جوابی نگرفتم. انجام کاری که از من میخواستی برام امکان پذیر نبود. باید به چیزی شهادت میدادم که درباره هیچی نمیدونستم من نمیخواستم علیه کسی شهادت بدم که به نظرم آب... آدم بدی نبوده سکوتشان طولانی شد راشل حس کرد حرفش باعث شوک شدن وایسمن شده است سعی کرد فضا را کمی تلتیف کند هنوزم نازی ها رو شکار میکنی خبرهای موفقیت هات رو میشنومم از اینکه عمرم رو برای این کار گذاشتم اصلا پشیمون نیستم جنایاتی که اونها در حق ما کردن فادارمون میکنه رهاشون نکنیم ما نباید ولشون کنیم که با وجود کارهایی که انجام دادن آزاد باشن این خیلی غم انگیزه که صدای ما باز هم ضعیف شده و مردم رنج های ما رو فراموش کردن ما نمیتونیم و نباید اجازه بدیم این جنایت از حافظه نسل ها پاک بشه باید همیشه به اونها یادآوری کنیم که اجدادشون و پدرانشون چه جنایتی مرتکب شدن بعد بلا فاصله موضوعی که به دومالش بود مطرح کرد. مطمئنم درباره ویولونی که این روزها به مزایده گذاشته شده شنیدی؟ بله. و اینم میدونی که قبل از اینکه این ویولون به دست خانواده اشمیت برسه پدرت صاحبش بوده؟ بله. من یه گزارش برای دادستان داست کل فرستادم و توضیح دادم که صاحب اون ویولون از مردم ما بوده و نازیها و افرادشون اون رو به زور و به طور غیرقانونی مصادره کردن. احتمالاً جنرال اشمید ویولون رو به زور از پدرت دزدیده و طبیعتاً مالکیت اون ویولون الان حق ماست. شاید خیلی از نازی ها فرار کرده باشن و بقیه هم چون سنی ازشون گذشته از مجازاتشون صرف نظر شده باشه. اما ما باید تا جایی که در توانمون هست حقمون رو ازشون بگیریم. موافقی؟ روشل تصمیم گرفت تصورات وایسمن درباره چگونگی رسیدن ویولون به خانواده اشمیت را تصحیح نکند و به او نگوید که چطور ویولون به دست خانواده اشمیت افتاد. نمیخواست بی با وایسمن وارد بحث شود. همچنین دوست نداشت وایسمن فکر کند او برنامه هایش را به هم بریزد و خراب کند. خاطرات گذشته به ذهنش هجوم آورده بود. سوال وایسمن او را از خاطرات بیرون آورد. ارزش اون ویولون چقدره؟ چندین میلیون درسته دوباره سکوت برقرار شد. البته هنوز حرفهایشان تمام نشده بود. وایسمن از لیوان آبی که مقابلش روی میز بود کمی نوشید و با دست عرق روی پیشانیش را رو پاک کرد راشل درک نمیکرد او ابتدا از چه چیزی ناراحت بود؟ تصمیم گرفت ساکت بماند و منتظر باشد تا ببیند قدم بعدی وایسمن چیست؟ نمیدانست چرا به خاطر حرفی که او میخواست بگوید کمی احساس ترس و نگرانی می کرد. من پیگیر کارها و تحقیقات و کتاب‌هاش هم هستم. میدونم تو به روش خودت زندگیت رو برای آرمان یهود وقف کردی. او مدت زیادی به حرفایش ادامه داد و از برنامه های خودش و انتظاری که از پایان احتمالی موضوع ویولون گرانبهای استرادیواری داشت برای راشل حرف زد. تمام توجه و برنامههایش روی سودهای احتمالی که از قبل آن ابزار موسیقی با ارزش ممکن بود به دست بیاید متمرکز بود. مسیر صحبت هایش نبهان عوض شد، طوری که راشل اصلا انتظارش را نداشت و همین دلیل دوباره تصمیم گرفت سکوت کند و اجازه دهد او هر چقدر که میخواهد و درباره هر موضوعی که دوست دارد حرف بزند. راشل فکر می‌کرد می در صدد پیروزی در پرونده مربوط به قومشان یهود باشد. انگار به شروط یک قرارداد مالی گوش میداد که ویسمن سود زیادی از آن انتظار داشت. آنچه در خیلی برایش عجیب بود این بود که، او میدانست آن ویولون در واقع هدیه ی معیر به اشمیت بوده و این را نیز میدانست که اشمیت به خانواده آنها برای فرار کمک کرده است. وقتی راشل از او پرسید اینها را از کجا میداند، وایسمن برایش توضیح داد که در زمان حبسش در اردوگاه آشویتس با فردی دیدار کرده است که معیر را میشناخت و او داستان اشمیت و ویولون را برایش گفته بود. همونطور که میدونیم ما تو اردوگاه مرگ کاری نداشتیم جز اینکه اتفاقات زندگیمون رو برای هم تعریف کنیم. در آن زندانهای تاریک ما یکی یکی داستان‌هامون رو تعریف کردیم تا شاید یکی زنده بمونه و برای دیگران نقل کنه. هیچ کدوم از ما نمیدونست آیا فردا زنده هست یا نه. به همین دلیل هر کسی داستانش رو برای دیگران تعریف کرد تا خط ارتباط خاطرات با هم قطع نشه. گفتگویشان درست مثل ملاقات سیسال سال قبلشان تمام شد. راشل گفت باید فکر کند و پاسخ بدهد. به اون نگفت آن دیدار اولشان نقش زیادی در زندگی امروزش داشته است. احساسی که راشل آن روز داشت این بود که با یک مبارز آشنا شده است، کسی که زندگیش را وقف زنده نگه داشتن دردهای مشترکشان کرده بود. او هم روش دیگری را برای مبارز انتخاب کرد و ایمان داشت که این روش برای نسلهای آینده مفیدتر است. تا غذایه را فراموش نکنند منشی دادستان رشته افکارش را پاره کرد بفرمایید الان میخوان شما را ببینند